بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوندی به اندازمه قبان نهایت بارش ای مردم از پروردگار خود بترسی ذاتی که شما را از یکتا آفری و همسر وای را از او آفری و از آن مردان و زنان بسیاری را پراکنده و از خدای بترسید که به نام او از یکدیگر دیگر می کنید و از قطع رشته زوال پرهیز پرهیس کنید حقا که خداوند بر شما مراقب است با اعتیمان چون به سن رشد خود رسیدن داراییشان را بدهید و اموال بد خود را به اموال خوبی اعتیمان تبدیل نکنی و اموالشان را به وسیله مفرود کردن با اموال خود مفرود حقا که این گناهی بزرگ است اگر میترسیدید که در امر ایتیمان عدالت کردن بیتوانید، از زنان مورد پسند خیش دو، سه یا چهار زن را نکار کنید، و اگر می میترسیدید که بین همسران خود عدالت برقرار کردن بیتوانید، پس یک زن بگیرید، یا از زنانی که مالک آنها هستید استفاده کنید، این کار شما از ظلم وسطم بهتر می کند برای زنان مهرشان را خوشی و رضایت بپردازید اما اگر قسمت از آن را خوشی خود به شما بخشیدند از آن خوشی و گواراهی استفاده کنید و اعمال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما گردانیده است و بیخردان ندهید از آن مال ایشان را بخورانید و بپوشانید و به ایشان سخن پسندیده بگوید را بیازمایی تا چون به سن نگاه رسیدن پس در آن وقت اگر از ایشان احساس رشد کردید مال را و دسترسشان قرار دهید و با اصراف و شتاب زدگی از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند مالشان را خچ نکنید کسی که توانگر است از استفاده آن خودداری کند و کسی که نادار است از آن به شیوه پسندیدای بخورد و چون دارایی ایشان را به دسترسشان قرار میدهید و ایشان گواه بگیرید و خدا اوند در حساب گرفتن به است از آنچه از پدر مادر و با باکی ماند است برای مردان و هم از آنچه از پدر مادر و با باکی ماند است برای زنان خواه دارایی کم باشد یا زیاد سهمی تعیین شده. و اگر در وقت تقسیم خیشاوندان، یتیمان و بینوایان حاضر شوند، برای ایشان از آن چیزی بدهید و با ایشان سخن پسندیده بگویید. تنها که اگر فرزندان ناتوانی از خود بگذارند و از آینده آن میترسند، باید از ستم بر یکیمان بپرهیزند باید از خدا پترسند و باید سخن راست بگویند. آنهای که مالهای یتیمان را با ظلم می خورند بیگمان آتش به شکم خود می خورند یعنی داخل می کنند و به زودی به آتش سوزان داخل می شوند خداوند شما را در مورد اولاد شما سفارش می کند برای مرد صهم مساوی به سهم دو زن اگر دختران دو یا زیاده از دو مانده باشند دو سل سه از ایشان است اگر یک دختر باقی مانده باشد پس برای او نصف است اگر از خود فرزندی گذاشته باشد برای هر یک از پدر و مادر او یک بر ششم میراث می‌رسد. و اگر فرزندی نگذاشته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند مادر یک سمس را میگیرد اگر متوفا از خود برادران یا خواهران بجا گذارد مادر یک بر ششم را می گیرد توضیح مال میراث در همه موارد بعد از ادای آنچه را متوفا وسیت کرده و بعد از ادای دین صورت می گیرد شما نمی دانید که پدران شما در نفر رسانیدن به شما نزدیکتر هستند یا فرزندان شما سهم تین شده ایست از جانب خدا قاک خداوند دانا و با حکمت است از آنچه زنان شما از خود به جا میگذارند هرگاه از ایشان اولادی نمانده باشد نصف آن به حیثی میراز به شما میرسد. اما اگر از خود فرزندی با جا گذارند چهاریکی میرازیشان از آن شماست البته بعد از ادای آنچه متوفا و کرده یا از او دین مانده است از آنچه شما از خود با جا میگذارید اگر از شما فرزندی نمانده باشد قسمت زنان یک رو است. اما اگر فرزندی از خود بجا گذارید بعد از ادای آنچه وصحت کرده ای و ادای دین برای زنان شما هشت است اگر مرد یا زنی که میراث او مطرح است کلاله باشد یعنی نی از وای مادر و پدر مانده باشد و نی هم اولادی ولی از خود برادری یا خواهری واقی با گذاشته باشد هر یک از این دو ششیکی میراث را می گیرند. اما اگر برادر و قاهر باقی گذاشته شده بیش از دو نفر باشند ایشان در سه یک میراث شریکند البته بعد از ادای آنچه متوفا وسیت کرده و بعد از ادای دین و شرط آنکه از طریق وسیت به کسی زیانی نرسد این حکم از جانب خدا و خداوند دانا و صاحب حلم است اینها حدود خداوند است هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند او را بهشت به های داخل میگرداند که در زیر درختان آن جویبارها و جریان دارد در آنجا جاودانه سر میبرند و این است رستگاری بزرگ و کسی که خلاون و پیانبر او را نافرمانی کند و از حدود خدا تخطی ورزد او را به آتش داخل میگرداند که در آن همیشه به سر برد و برای او عذابی رسوا کننده است کسانی از زنان شما که به اعمال فحشا مبادرت میورزند چهار مرد را از میان خود بر ایشان شاهد گیرید و چون شهود گواهی دادن، آن زنانی را که علیهشان گواهی داده شده است تا هنگامی به خانه ها محبوس کنید که مرگ ایشان را دریابد، یا اینکه که خداوند برایشان راه دیگر مقرر نماید. آن دو کسی که در میان شما با اعمال فحشا مبادرت ورزند، هر دویشان را مجازات کنید، اگر ایشان توبه کنند و اصلاح شوند، پس از ادامه مجازاتشان خودداری کنید، خدا خداوند بیرمان توبه زیر و مهربان است حقاک پذیرش توبه بر خداوند برای کسانی است که به نادانی کارهای بد می کنند باز به زودی توبه می نمایند پس توبه اینها را خداوند می پذیرد و دانا و با حکمت است توبه کسانی پذیرفته نمی شود که چون مرگ یکی از ایشان را دریافت در آن وقت بگوید حالا من واقعا توبه کردم و نی توبه کسانی پذیرفته می شود که در حال و زندگی را درود گویند برای چنین مردم مجازات بحث در ناک را آماده ساخته ای مؤمنان برای شما حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به حیث نیراس بگیرید و نه هم ایشان را تحت فشار قرار دهید تا بدین وسیله وسیلت قسمتی از مهری را که با ایشان داده اید باز ستانید مگر در حالتی می توانید آنها را زیر فشار بگیرید که به صورت آشکارا مرتکب عمل فحشا شده باشند و بازنانی خیش برویش پسندیده رفتار کنید اگر از ایشان بد می برید، پس ای بسا که از چیز بد برید و خداوند در آن خیری بسیاری بگرداند اگر بر آن شدید که به وزی همسر خود همسر دیگر بگیرید گرشه به همسر خود که مقصد طلاق او را دارید مال فراوان هم داده باشید هیچ چیزی را از وی باز نستانید آیا مال را به وسیله تهمت و به گناه آشکار میگیرید؟ و چطور آن مال را میگیرید در حالی که از یک دیگر کام گرفته اید و از شما به وسیله عقد نکاح عهد محکم گرفته اند. و زنان را به کاه مگیرید که پدران شما نکاح کرده بودند جز آنچه گذشت این عمل زشت و خشم انگیز است و چی بد روشی؟ برای شما نکاح مادرانی شما دختران شما فهرانی شما امه شما خالهای شما برادرزاده های شما خواهرزاده های شما مادران ریزایی شما خواهران ریزایی شما خوشوهای شما، دختر های شما که در آغوش شما پروری شیاخته و از آن همسران شما پیدا شده که شما از آن همسران کام گرفته اید حرام است. اما اگر شما از همسران خیش کام نگرفته باشید، به نکاح گرفتن دخترانشان و شما گناهی نیست. نکاح زنان آن پسران شما که از پشت شما باشند و به نکاح گرفتن دو خواهر در عین وقت نیز حرام است. مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشید. بیشک خداوند آموزگار و مهربان است همچنان بر شما نکاح زنان و هردار حرام شده است مگر آن زنانی که به حیث اصیر جنگی مالک ایشان شده ای اینها حکم خداست بر شما جز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است در صورتی که مهرشان را بفردازی آنها را به نکاح و از زنا خودداری ولزی و چون از زنان کام گرفتید، پس مهرشان را به حیث یک فریزت بپردازید. بعد از تاین مهر بر شما گناهی نیست، در آنچه با رضایت کامل در باره تغییر بعد از تعیین مهر به آن توافق کردید. حقاک خدا و ون دانا و صاحب حکمت است. اگر کسی شما توان آن را ندارد که زنان آزاد پاکدامن مسلمان را نکاح کند می توانید از دختران پاکدامن کنیز به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است شما از یک دیگر هستید چی برده باشید و چی آزاد همه بنی آدم هستید کنیزان را به اجازه مالکانشون نکاح کنید و مهر آنها را به وجه مناسب بپردازید. در حالی که باعفت باشند و به فحشا متوسل نشوند و نه هم دوستان نهانی داشته باشند و چون در قید نکاح در آورده شدند اگر به فحشا پرداختند مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است و خداوند گاو و مهربان است خداوند می خواهد که برای شما روشهای کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید خداوند دانا و صاحب حکمت هست خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می که شما بسیار منحرف شوید خداوند می خواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است ای مؤمنان، دارایی خود را در میان خیش بناحق مخورید بلکه باید به با اساس تجارتی باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خیشتن را مکشید حقا که خداوند به شما مهربان است اگر کسی این کار را ناحق و از روی ستم بکند به زودی ما او را به آتش می‌افکنیم و این کار برای خداوند آسان است اگر شما از گناهانی گناهان کبیره ای که از احتکاب آنها نهی شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما میزودایید و شما را به مقام گرامی داخل می کنید. <تصفيق> برطری های که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده، بارزو ما برید، مردان از چیزی که کسب کرده آن به روار می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده آن به روار می شوند و از خداوند از فضل و احسان او بخواهید حقا که خداوند به همه چیز داناست برای هر کس از آنچه مادران، پدران و اطاربشان از دارایی خود بذاشته اند وارثان قرار داده ایم. و نیز به کسانی که با ایشان عهد بسته ای. پس حسه هر کدامشان را بدهید اید که خداوند بر هر چیز گواه است مردان سرپرست زنانند یعنی بر زنان تسلط دارند از سبب اینکه خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و نیز به این سبب که از مالهای خود می میکنند پس زنان نیکو کار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال و آبروی او را به نگهبانی خدا پاسداری میکنند و زنانی که از بدخوییشان می میترسید پس آنها را نخست نصیحت کنید و باز ایشان را از بستر خیش جدا کنید و باز ایشان را به آهستگی بزنید و بالاخره ایشان اگر شما را فرمان بردند پس راهی را برای الزام بر ایشان مجوید حقاک خداوند بلند مرتبه و بزرگ است اگر از اختلاف بینشان تفسیدید پس حکمی از وابستگان مرد و حکمی از وابستگان زن بفرستید اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند بینشان موافقت می آرد. حقا که خداوند دانا و آگاه است و خدا را پرستش کنید و با او چیز را شریک میاورید و با پدر و مادر خیشنی کویی ورزید و نیز با خویشاوندان یتیمان، نیازمندان همسایگان خیشاوند، همسایگان بیگانه همیشین نزدیک و مانده در راه و برده های که مالکشان هستید حقا که خداوند متکبر خودستا را دوست ندارد آنهایی که با می ورزند و مردم را به با فرا می خانند و را خداوند از فضل خیش به آنها اعطا کرده است، پنهان می کنند ما برای کافران عذاب احانت آمیز ساخته سخته و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف می کنند تا آن را به مردم نشان دهند و نه با خداوند و نه هم به روز آخرت ایمان دارند کسی که شیطان یا او باشد پس چی بد یا است شیطان و آیا چیزیانی زیانی بر آنها وارد می اگر به خدا و روز آخرت ایمان می آوردن و از آنچه خداون به ایشان روزی نموده خرج می کردند و خداون به حال ایشان داناست حقا که خداون به قدری ذره هم ظلم نمی کند اگر عمل نیک باشد آن را دوچندان می گرداند و از نزد خود مزدی بزرگ می دهد چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواهی بیاوریم و تو را گواه بر اینها بیاوریم در آن روزانانی که کافرند و پیانبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش زمین با ایشان یکسان می شود و ایشان هرگز سخنی را از خداوند پوشانیدن نمی توانند ای مؤمنون در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را میگوید بدانید و نی هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آنکه که اوبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا اینکه غسل نمایید اگر مریض یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت ورزیدید و آب نیافتید پس به خاک پاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن روحا و دست های خود را مساحت کنید خداوند بیگمان گمان گرو و است آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان شان بهره از کتاب داده شده بود ایشان گمراهی را می و می شما نیز گمراه شوید خداوند به حال دشمنان شما داناتر است خداوند به حیث کارساز بسنده است و خداوند به حیث مددگار بسنده است از یهودیان کسانی هستند که کلیمات را از جاهای درست آنها تحریف کرده می گویند می شنویم و نافرمانی می کنیم و بشنو که هرگز شنواندن نشوید و با پیچانیدن زبانهای خیشتان زنان به دین می گویند راینا اما اگر ایشان میگفتند گفتند می و فرمان می و بشنو و سوی ما نظر کن این کار برایشان بهتر و مناسبتر می بود مگر خداوند به ایشان به سبب کفرشان لعنت کرد پس ایمان نمی آورند مگر تعداد کمی ایشان ای کسانی که به شما کتاب داده شده است به آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده است که با شما است ایمان آرید پیش از اینکه صورت بعضی از شما را محو کنیم و آنها را بر پشت سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم چنانچه اهل سبت نقص کنندگان مقراراتشم برای لعنت کردی و فرمان خدا حتما عملی شده نیست. خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناه را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شریک آرد بیگمان به این افتراء گناه بزرگی را مرتکب شده است. آیا به سوی کسانی ندیدی که نفسهای خیش را تذکیه می کنند بلکه خداوند هرکی را بخواهد پاک می و به ایشان کمترین ستمی نمی شود ببین چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افترا می کند؟ و این امر به حیث گناه آشکار بسنده است آیا به سوی کسانی ندیدی که به ایشان به از کتاب داده شد به جبت و تاغوت می گیروند یعنی به بودها و شیطان تعظیم می کنند و به کافران می گویند که ایشان نسبت به مسلمانان رهیاب ترند آنها کسانی اند که خداوند ایشان را لعنت کرده است و کسی را که خداوند لعنت کند هرگز برای او مددگاری نمی یاوی آیا ایشان را در پادشاهی و یا قدرت نیست؟ پس در این صورت کمترین چیزی به مردم نمی دهد یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد می وزن در حالی که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم ارزانی داشتیم پس بعضی از ایشان به آن ایمان آوردن و بعضی از ایشان از وی روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان و سنده است آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند و زودی در آتش می افگنیم. هر باری که پوست بدانشان بسوزد آن را به پوستی دیگری تبدیل می کنیم تا عذاب را بچشن حقا که خداون صاحب قدرت مونی و با حکمت است کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایستان انجام دادن ما به زودی ایشان را در بهشتهای را می دهیم که در زیر درختان آن جویبارها است. در آن جاودانه و سر می برند و در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزهای می باشد ایشان را در سایه پاینده جا می دهید خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهل آنها بسپارید و چون بین مردم حکمیت می کنید قضاوت عادلانه بنمایید حقی که خداوند به شما پند و اندرسهای خوبی می به شک خداوند شنوا و بیناست قیم مؤمنان خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و کسانی از خود را فرمان برید که اول الامر شمایم هرگاه بر چیزی در میان خود اختلاف ورزیدید، آن را به خداوند و پیامبر او ارجاع کنید اگر به خداوند و به بروز آخرت ایمان دارید، این کار بهتر و نیک تر است آیا به سوی کسانی ندیدی که گمان می کنند به آنچه به تو و به کسانی پیش از تو نازل شده ایمان دارند در حالی که می خواهند حکمیت را به شیطان محول کنند با اینکه به ایشان حکم شده تا از پیروی شیطان خودداری ورزند شیطان می خواهد که ایشان را در نهایت گمراهی قرار دهد و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیانبر بیایید منافقان رو میبینی که روی خود را از تو با کینه توزیح میگرداند پس چی است وقتی که با مصیبتی برسند که از پیش به دست خود انجام اند، سپس پیش تو بیایند و با خداوند سوگن یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیزی دیگر نبوده است ایشان کسانی اند که خداوند آنچه را در دلهایشان است میداند لذا زیشان اعراض کن آنها را پند بدی. و به ایشان در حق خودشان سخنی مؤثری پیروز ما هیچ پیانبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق با فرمان خدا از او اطاعت شود اگر آنها هنگامی که به خود ستم کرده بودن به نزد تو می آمدن و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیانبر برایشان آمرزش می طلبی واقعا خدا را توبه پیزی و مهربان می یافتند. امان خیر به پروردگار تو سوگن که ایشان ایمان نمیآورند. یعنی مؤمن راستین شمردن نمی شوند تا تو در تمام منازعات خود حکم بسازند و سپس در برابر فیصله های تو هیچ احساس دلتنگی نکنند و به این فیصله ها با کمال انکیاد تسلیم شوند اگر ما به ایشان به مانند های پیش امر می کردیم که خود را بکشید یا از وطن خود بیرون شوید این کار را نمی کردند مگر دهی محدودی از ایشان اما اگر ایشان آنچه را برای ایشان داده می شود واکن انجام دهند حتی که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان می گردد. و در آن صورت البته برای از نزد خود مزد بزرگ می دادیم و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد پس او در کسانی است که خداوند بر ایشان نعمتهای ارزانی کرده است از پیامبران، سیدیکان، شهیدان و کاران، چی دوستانی کوی؟ این است فضلی از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا و بسنده است ای مؤمنان، آمادگی خود را در برابر دشمن بیری و با در داشت شرایط و جهاد گروه گروه بیرون شوید یا همه یک جاه بیرون شد. یقینا در بین شما کسی هست که درنگ میورزد یعنی و اشتراط در جهاد بیمیلی نشان میدهد. اگر مصیبتی به شما آید شود میگوید خداوند بر من منت نهاد که در میانشان حاضر نبودم. اما اگر به شما فضلی از جانب خداوند عاید شود با یقین می گویند ای کاش من با ایشان می بودم تا از این پیروزی بزرگ بهرور می گشتم تو گویی میان شما و ایشان هرگز پیوندی از محبت وجود نداشته است پس در راه خدا باید کسانی بجنگند که زندگی این دنیا را در برابر آخرت می فروشند کسی که در راه خدا می جنگد خواه کشته می شود یا پیروز می گردد بزودی ما به او مزی بزرگ می دهیم و چرا در راه خدا نجنگید و برای نجات بیچارگانی از مردان، زنان و کودکان که می گویند پروردگار ما ما را از این دیاری که مردم آن دارند بیرون آور. و برای ما از جانب خود سرفرستی را مقرر گردان و برای ما از جانب خود مددگاری را تاین تا گردان مؤمنان در راه خدا می جنگند و کافران در راه شیطان می جنگند پس شما با دوستان شیطان بجنگید واقعا هلا و نیرنگ شیطان ضعیف است آیا و سوی کسانی ندیدی که برایشان گفته شد دستهای خود را از جنگ باز دارید و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و زکات را بپردازید پس چون بر ایشان حکم جنگ صادر شد ناگاه گروهی از ایشان از مردم و اندازه ترسیدن که می بایست از خدا بترسند یا ترسی بیشتری آنها گفتند پروردگار ما چرا بر ما جنگ را فرض گردانیدی کاش ما را تا مدت کوتاهی مهلت می بگو متای این دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و در حق ایشان کوچکترین ستمی نمی شود در هر جایی که باشید مرگ شما را در می اگر اگرچه در برچهای مصرح کمی باشید اگر به با ایشان خوبی برسد میگویند این از جانب خداوند است اما اگر به ایشان به گیاهی شود خطاب به پیانبر میگویند این از جانب توست بگو همه چیزها از جانب خداست پس این مردم را چه شده است که از فهم سخن دورند. ای انسان هر آنچه به تو از خوبی رسیده از جانب خداوند است ولی هر آنچه چی به تو از بدی رسیده از جانب خود توست ما ترا تو به حیث پیانبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حیث گواه سنده است هر که پیانبر را فرمان می برد، پس حقا که خداوند را فرمان برده است و کسی که اعراض می کند پس ما ترا به حیث نگهبان بر ایشان نفرستادیم ایشان به زبان خود میگویند ما فرمان برداریم اما وقتی که از نزدیک تو بیرون می روند روح از ایشان شب را به حرفای غیر آنچه تو می گویی می گذرانند. خداوند سایس شبانه ایشان را در نامه اعمالشان می نویسد از ایشان روی بگردان و به خداوند توکل نما و خداوند به حیث کار ساز بسنده است آیا در قرآن غور نمی کنم؟ اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود، البته در آن اختلاف زیادی می آفتند. هنگامی که با ایشان خبری از امن یا ترس بیاید، آن را افشا می کنند. اگر آن را با پیانبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشند، ارجاع می کردند، بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند، می کدام خبر قابل افشا و کدام خبر در خبر اخفاف و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، جز تعداد کمی از شما همه از شیطان پیروی می کردید، پس در راه خدا پیکار کن تو صرف در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق کن شاید خداوند شدد کارزار کافران را باز دارد خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خی شدیدتر است کسی که به امر نیکویی سفارش می کند برایش بهره از ثواب آنداده می شود و کسی که به امر ناشایستهی سفارش کند برایش سهمی از گناه آنداده می شود و خداوند بر هر چیز نگهبان و تواناست چون سلام گفته شوید و سلامی پس نیکو تر از آن سلام گوید یا به مثل آن حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند خداوند معبود جز او نیست یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست می کند و کیست راستگو تر از خداوند در سخم پس شما را چی شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید خداوند ایشان را در برابر اعمال مرسدانه ایشان نیگون سار گردانید آیا می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده از رحیاب سازید؟ و کسی را که خداون گمراه سازد برای او راهی یافتن نمی توالید بانها با دوست دارند که شما هم کافر شوید همان که ایشان خود کافر شدند پس به این ترتیب با هم برابر می شوید پس شما از ایشان دوستانی نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند پس اگر روی برتابند، پس در هر جایی که آنها را میابید بیگیرید و بکوشید و از آنها کسی را دوست و مددگار نگیرید و کسانی که با قوم پیوست شوند که بین آن قوم با شما معاهده صلح برقرار است یا کسانی که به سوی شما می آیند و جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت می گیرد دلتنگ شده اند اگر خداوند می خواست ایشان را بر شما مسلط میساخت پس با شما جنگ می کردند بنابر اگر ایشان از شما کناره گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند در آن صورت خداوند برای شما شما در برابر ایشان راهی برای جنگ نداده است ایده دیگری را در یافت که می تا با منافقت هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناهی قوم خود در امان باشند هر باری که بر با فتنه انگیزی صف داده می شوند، در آن سر نیگون می گردند. اگر از جنگ با شما کناره نگیرند و به شما تضمینات صلح ندهند و از این فتنه انگیزی دست بردار نشوند، پس در هر جایی که ایشان را می بیگیرید بی و بکشید. آنهایان که شما را در برابر ایشان تسلط آشکار داده اید. برای هیچ مسلمان مجاز نیست که مسلمانی دیگر را بکشد مگر به گناه خطا و کسی که مسلمانی را به خطا بکشد پس کفاره آن آزاد کردن برده مسلمان است و خونبه های پرداخت شده به خانواده مقتول مگر آنکه که ابراده هست. اگر مقتول از قوم دشمن شما بود در حالی که مسلمان بود پس کفاره آن آزاد ساختن برده مسلمان است و اگر مقتول از قومی بود که میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود پس بر شما خونبه های پرداخته شده به خانواده او و نیز آزاد ساختن برده مسلمان است کسی که به این چیزها دسترس نیابد پس بر روزای روزۀ دو ماه متوالی از جانب خداوند به حیث توبه است و خداوند دانا و با حکمت است و هر کی مسلمانی را عمدا بکشد پس جزای او دوزخ است در آنجا برای همیشه ب سر میبرد برد خداوند بر او خشمگین شده است او را لعنت کرده است و برای او عذاب بزرگی آماده ساخته است ای مؤمنان وقتی در راه خدا قدم زدید یعنی سفر کردید پس دقت کنید و به کسی که با شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام میدهد ما گوید مسلمان نیست در حالی که مال و متاع فانی دنیوی را میجوید پس در نز خداوند غنیبت های فراوانی وجود دارد خود شما نیز پیش از این چنین بودید پس خداوند بر شما منت گذاشت. او کنید دقت کنید حقا و که خداوند به آنچه می کنید آگاه است آن مسلمانانی که می نشینند یعنی از جهاد خود را کنار می کنند در حالی که معذرت هم ندارند با کسانی که به مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند مساوی نیستند خداوند برای کسانی که به مال و جان خود جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی جهاد خود را کنار گذاشته اند درجه برتری داده است خداوند برای همه ایشان وعده پاداش نیک کرده است ولی مجاهدان را نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی جهاد خود را کنار گذاشته اند با مزد بزرگ برتری داده است درجه که از جانب او اعطا شده و آمرزش و مرحمتی و خداوند آمرزگاری مهربان است آنهایی هایی که خود ستم کرده چون فرشتگان ارواح ایشان را قبض می و ایشان میگویند شما در چه حالی بودی؟ آنها جواب میدهند دهند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم فرشتگان می گویند آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت می کردید؟ پس آنها جایشان دوزخ است و چی بد پناگاهی؟ مگر ناتوانان از مردان، زنان و کودکان که نی وسیله دارند و نی هم راهی را می یابند پس چنین مردمی امید است که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کنده و آمرزگاه است؟ و کسی که در راه خدا هجرت می کند در زمین جاهای بسیار و گشایش می آبد. اگر کسی از خانه خود به حیث مهاجر در راه خدا و پیامبر او بیرون می شود و سپس مرگ دامنگیرش می شود حقا که مزد او بر خداست و خدا خداوند آمزگار و مهربان است هنگامی که در زمین قدم می زنید یعنی سفر می کنید بر شما گناهی نیست اگر قسمتی از نماز را کوتاه کنید در صورتی که از این ترس داشتید که کافران شما را به فتنه اندازند بیگمان کافران برای شما دشمن آشکار هست. و هنگامی که تو در میانشان باشی و نماز را برایشان برقرار کنی با یک گروه ایشان با تو به نماز صدا شوند و اسلحه خود را بگیرند هنگامی که آنها سجده خود را به پایان رسانیدند در آپی به شما عکس موقع کنند و آنگاه گروهی دیگر که هنوز نماز را کرده اند بیایند و نماز را با تو ادا کنند و امنیت و صلاح خیش را بگیرند کفار دوست دارند که اگر شما صلاح و مهمات خیش واصل شوید بر شما به یک بارگی اگر به شما عذیتی از باران یا مریضی باشد بر شما گناهی نیست که صلاح خود را بگذارید ولی امنیت خود را بگیرید حقاو که خداوند برای کافران مجازات رسوا کنندهی را آماده کرده است و هنگامی که نماز را ادا کردید پس خداوند را در حال استاده نشسته و افتاده به پهلوی خیش یاد کنید اما چون ایمین شدید نماز را به صورت معمول برپا دارید گمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین آن فرض است و در تحقیب این مردم سوستی مکنید اگر شما دردمند می شوید ایشان نیز دردمند می شوند به همان گناهی که شما دردمند می شوید اما شما از خداوند چیزی را امیدوار هستید که ایشان امید ندارند و خداوند دانا و با حکمت است ما به تو کتاب را براستی فرستادیم تا بنی مردم مطابق به آنچه خداوند را آگاه ساخته حکم کنی و از کسانی ما باش که از خیانت کاران حمایت می و از خداوند آمرزش بخوا حقا که خداوند آموزگار و مهربان است از جای کسانی که به خود خیانت می کنند مجادلن مکن حقا که خداوند کسی را که خیانت پیشه و گنهکار باشد دوست ندارد ایشان به سبب این خیانت ها از مردم می ترسند ولی از خدا نمی ترسند. یا اینکه چون در مجالس شبانه خیش به حرفهای ناخوش آین میپردازند، خدا با ایشان هست و خداوند به هر عملی که آن را مرتکب میشوند، شوند احاطه دارد هان، این شما هستید که از جای ایشان در زندگی این دنیا مجادله می کنید پس کیست که از جای ایشان در روز قیامت در برابر حکم خداوند مجادله کند؟ یا کیست که برایشان کار ساز باشد؟ هر کسی که کار سیر را مرتکب شود یا بر خود هم نماید و بعداً آموزش خدا را بخواهد خداوند را آمرزگاری مهربان نیامد. و کسی که گناهی را مرتکب شود زیانیان به خودش می رسد و خداوند آنو با حکمت است و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود و آن را بر آدم بی گناهی تهمت زند پس او والکن آن تهمت و آن گناهی آشکار را بر دوش گرفت است و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمی بود واقعا گروهی از ایشان در دستد آن بودند که تو را گمراه کنند اما در حقیقت ایشان جز خیشن کسی دیگر را گمراه نمی کنن. و به تو کمترین زیانی عاید کردن نمی توانند خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستادن. و آنچه را نمی بر به تو آموخت و فضل خداوند بر تو بزرگ است در بسا از های محرمانه یعنی سرگوشیشان شان خیری نیست مگر آنکه کسی به صدقهی یا عمل نیکی یا مصالحۀی بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند به زودی برای او مزری بزرگ خواهیم داد و هر که با پیانبر مخالفت کند بعد از آن که برای او راه راست روشن شده است و راه جز راه مسلمانان را پیروی کند او را با همان راهی که برگزیده است او ها میگذارید و به دوزخش میاندازید و چی بعد مرجعی است دوزخ که خداوند این را که با او شرک آورده شود نمی ولی سوای شرک هر کسی را که بخواهد میامور و کسی که به خدا شرک آرد بیگمان بسیار گمراه شده است مشرکان نیایش نمی کنند مگر زنان را یعنی بوتانی را که به نام زن نامگذاری کرده اند و ایشان صدا نمی کنند مگر شیطان سرکش خداون او را لعنت کرد او گفته است بیگمان من از بندگان تو حصه معینی را میگیرم و واکن من ایشان را گمراه می کنم و من ایشان را بر آرزو فرفته می سازم و ایشان عمر می کنم تا گوش های چارپایان را بشکافند و به ایشان عمر می کنم تا آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کسی که شیطان را به جای خداوند دوست می گیرد حقاکی زیان آشکار را مرتکب شده است شیطان به ایشان وعدم دهد و ایشان را به آرزو فرفت می سازد و شیطان به ایشان جز فریب وعده نمیکند. این فریب خورده ها جایگاهشان دوزخ است و از آن گریزگاهی نمی عمد. ولی آنهایی که ایمان آوردن و کارهای نیکونه بودن بزودی ایشان را به بهشتهای داخل می کنیم که در زیر درختان آنها جویباها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر می برند وعده خداوند حق است و آیا کسی از خداوند راشت بودتر بودن می تواند؟ کار نی به وفق زوی شماست و نی هم به وفق عرضوی اهل کتاب کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق به آن مجازات می شود و برای خود جز خدا و دوست و مددگاری نمی آمد. و کسی که از کارهای نیکو انجام دهد خواه مرد باشد یا زن و صاحب ایمان هم باشد پس چنین مردمی به بهشت داخل می شود و به ایشان کوچکترین ستمی نمی شود و کیس نیکوتر در دین خود از کسی که تمامی هستی خیش را به خدا تصدیم کرده و در عین حال نیکوکار نیز هست و از آین خالص و پاک ابراهیم می کند و خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت و هر آنچه در آسمان و زمین است ازان خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد از تو در زنان می پرسند بگو خداوند به شما در کتابی که به شما تلاوت می شود در مورد رعایت حال ایشان سفارش می کند و نیز در مورد یتیمان زنانی که به ایشان حقوق شده ایشان را نمی دهید و میخواهید ایشان را نکار کنید و نیز در مورد کودکان ناتوان و اینکه در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و هر عمل نیکوی که انجام می دهید پس حقا که خداو و اگر زنی از رویه زشت یا اعراض همسرش بترسد برایشان گناهی نیست که در بین خیش و دونه مصالحه کنند و صلح بهتر است هرچند در نهاد انسان آز همیشه حضور دارد ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری وزید پس حقا به آن می بکنید خداوند آگاه است پرگیز نمی توانید بین زنان عدالت کنید هرچند به آن از دل و جان بکوشید پس از همسر خود خودتوری رو مگر دانید که وی را به مانند زنی در حال تعلیق قرار دهید اگر راه اصلاح و پرهیزگاری رو پیش دیرید پس حقا که خداوند آموزگار و مهربان است و اگر زن و شوهر از یکی جدا شوند خداوند هر کدام را به اساس گشایش خیش بینیاز می سازد و خداوند گشایش و با حکمت است هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما یعنی مسلمانان را توصیح کردیم که از خدا بتسید اما اگر کافر شدید پس بیگمان هر چیزی که در آسمانها و زمین است از خداست و خداوند بی یاز است و ستوده و هر آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خداوند در کارسازی بس نه است اگر بخواهد شما را ای مردم از بین می برد و مردم دیگر می آفریند و خداوند بر این کار قدرت دارد کسی که پاداش این دنیا را می خواهد در نز خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت هر دوم وجود است و خداوند شنوا و بیناست ای مؤمنان بر انصاف و استوار و برای خدا گواه باشید، اگرچه به ضرر خود شما یا پدر و مادر شما یا نزدیکان شما هم باشد، اگر توانگر یا نادار باشد، پس خدا و ایشان و هر حال سزاوارتر است، پس به پیروی هوای نفس خود از عدالت سپیچین مکنید و اگر شما گواهی را در بین دهان خود توری بپیچانید که حقیقت پوشیده بماند و یا از عدای گواهی روی برگردانید پس بدون شک خداوند بر آنچه می کنید آغاست، ای مؤمنون با خدا و با پیانبرش و با کتابی که با پیانبرش نازل گردانیده و نیز با کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمانالی و هرکی از خدا فرشتگان او کتبی او پیامبران او و روز آخرت این ورزد و بسیار و زیاد گمراه شده است کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز باری دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کافر ادامه دادند خداوند هرگز ایشان را نمی و هرگز ایشان را برای راست هدایت نمی نماید به منافقان مجده بده به آن که بدون شک برایشان ایشان عذابی است. هایی که کافران را بیوز مسلمانان به حیث دوستانشان میگیرند؟ آیا از نزدشان عزت می خواهند پس واقعا عزت به تمام و کمال از آن خداوند است واقعا پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده است که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد پس با ایشان یعنی کسانی که مرتکب این عمل می شوند منشینید تا این اینکه با سخن دیگر بپردازند و نه شما هم در این حال مثل ایشان هستید حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع یکند ها مترسل شماین. پس چون به شما پیروزی از جانب خدا رسیب شد رفتند آیا ما با شما نبودیم اما اگر برای کافران پیروزی باشد، منافقان به با ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمیدادیم ما به شما در مقابله با مسلمانان باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم پس خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله میکنند و خداوند هرگز برای کافران راهی یعنی تسلطی بر مسلمان قرار نمی دهند. بیگمان بگمان منافقان فکر می که خدا را فریب می دهند در حالی که خداوند به ایشان سزای فریبشان را می دهد و چون به نماز برخیزند بدون رحمت برمی خیزند در برابر مردم ریاکاری می کنند و خداوند را یاد نمی کنند مگر اندکی. بین این و آن یعنی کفر و ایمان متردده و سمیمی نیستن نی به این دسته و نی هم به آن دسته بگمان کسی را که خدا و من گمراه می کند برای او هرگز راهی نمی آمید ای مؤمنان کافران را به جای مسلمانان دوست مگیری آیا می تا در نزد خداوند الزام صریحی و خود وارد کنید؟ حقو که منافقان در طبقه زیرین آتشند و تو هرگز برای شان مددگاری نمی یابی مگر که توبه کردند خیشتن را به صلاح آراسته ساختند و بدین خدا چنگ زدند و دین خیش را برای خدا خالص ساختند اگر چنین باشد پس ایشان با مسلمانانند و خداوند به زودی برای مسلمانان پاداش بزرگ می ده. خدا به عذاب شما چی کار دارد اگر سپاس گذارید و ایمان آرید و خداوند در برابر اعمال شما شب گزار و به کارهای شما داناست خداوند دوست ندارد که کسی به گونه آشکارا دیگری را به بدیاد کند مگر شخصی که به او ستم شده باشد و خداوند شنوا و داناست ول عمل نیکو را خواه آشکار سازی یا آن را پنهان کنی یا از بدیها گذشت نمایی بگمان خداوند عفو کننده تواناست بیگمان آنونی که از خدا و پیاموران او انکار ورزن و میخواهند بین خدا و پیامبران او به جدایی قاید شوند و میگویند ما به بعضی ایمان داریم و از برخی دیگر منکر هستیم و میخواهند راه را در وسط این دو راه بگیرند هم ای شانن کافران واقعی و ما برای کافران عذاب رسوا کلنده آماده کردیم و برای کسانی که به خداوند و پیامبران او ایمان دارند و در بین هیچ یک از پیامبران فرق نمی خداوند به زودی پاداششان رو می دهد خداوند آمرزگار و مهربان است اهل کتاب از تو می تا برای ایشان کتابی از آسمان به یک بارگی ایشان از موسا خواهان موجزه از این هم بزرگتر شد، گفتند خداوند را به گناه آشکار ما بنمایان پس ایشان را به سبب این ستمشان سایقه گرفت بعد از آن که برایشان برای موجزه های روشن آمده بود گو را به خدایی گرفتند با این هم از این گناه آنها را کردیم و به موسی غلبۀ آشار دادیم و برای گرفتن عهدشان کوهی کوه تور را بر سرشان بالا کردیم و باری به با ایشان گفتیم به دروازه با فروتنی دراید و باری دیگر به با ایشان گفتیم در روز شنبه تجاوز نورزید و از ایشان پیمان و استوار و جدی گرفتید ایشان به سبب شکستن پیمان استوار خیش و انکار خیش از آیات خدا و کشتن پیامبران بناحق و این گفته ایشان دلهای ما غلاف است. بلکه خداوند بر دلهایشان به سبب کفرشان مهر نهاد. از این رو جزء ده کمی از ایشان ایمان نمی باورد. و نیز به سبب کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم گفتند. و گفته ایشان که ما بدون شک مسیح به سر مریم پیانبر خدا را کشتید در حالی که ایشان هرگز او را نکشتند و نه هم او را بدار زدند بلکه بر ایشان عمر مشتبه شد و هفت کسانی که در باره او اختلاف ورزیده از آن در شکند که در زمینه هرگز علمی ندارند مگر پیروی گمان و به یقین او را نکشتند بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است و واکن از اهل کتاب هیچکس نیست مگر اینکه به او پیش از مرگش ایمان می آورد و او در روز رستاخیز بر ایشان گواه می باشد پس بس به سبب این همه ظلم یهودیان ما بر ایشان چیزهای پاکیزه را که به ایشان حلال گردانیده شده بود حرام ساختیم و به سبب که ایشان تعداد بسیاری را از راه خدا منع می کردن. و به سبب سودخاری ایشان در حالی که از آن منع شده بودند و به سبب این که ایشان مال مردم را به ناحق می خوردن. ما برای آن اده ایشان که کافر شدند عذاب دردناک را آماده سادهیم مگر کسانی از ایشان که از علم و استوار برخوردارند و مؤمنان به آنچه با توفر ساده شده و آنچه پیش از توفر ساده شده بود ایمان دارند و آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و زکات را می پردازند و به خدا و روز آخرت ایمان دارند و ایشان به زودی پاداش بزرگ می هقاو که ما به سوی تو وهی فرستادیم طوری که به سوی نوح و پیامبرانی بعد از او وحی فرستادی و به ابراهیم اسحاق یعقوب و اولادی وی و به عیسی عیوب یونس هارون و سلیمان وحی فرستادی و با داود زبور را دادیم پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را با تو نگفتیم و خداوند با امساس و زد. پیامبرانی هم مجدگانی دهنده هم بیم دهنده تا برای مردم بعد از ارسال پیامبران دلیل بر خداوند نباشد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. مگر خداوند گواهی می دهد بر اینکه آنچه را به سوی تو فرو فرستاده آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خداوند برای گواهی بسنده است حقا آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بدون شک به گمراهی دور و درازی گرفتار شدند واقعا آنهایی که کافر شدند و ستم نمودند هرگز خداوند آنها را نمیامرزد و نه هم ایشان را بر راه هدایت می کند مگر راه دوزخ که در آن جا برای همیش و سر می برند و این کار برای خداوند آسان است ای مردم بیگمان پیانبر برای شما برستی از جانب پروردگار شما آمده است پس به او ایمان بیاورید این کار برای شما خیر است اما اگر کافر شوید پس بیگمان آنچه آن در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است ای اهل کتاب در دین خود غلو یعنی افراط مکنید و در شان خدا جز حق چیزی دیگر مگوی واقعت ام این است که مسیح پسر مریم پیامبر خدا و کلیمهی اوست که او را به مریم القا کرده و روحیست از او پس به خداوند و پیامبران او ایمان ارید و مگوی که خدا سه هست از این خودداری کنید بخیر شماست بیگمان خداوند خدای یکتاست پاک است از اینکه او را فرزندی باشد هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن او و خداوند در کارسازی و است ایسا از اینکه بنده خدا باشد سرپیچی نداشت و نه هم فرشتگان مقرب از این سرپیچی دارند و هرکی از بندگی خدا سرپیچی کند و سرکشی نماید از خداوند همه ایشان را به دودی و سوی خود جمع می کند اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند پس خداوند مدشان را کامل میدهد و به ایشان از فضل خود می‌افزاید. اما کسانی که سرپیچی کردند و سرکشی ورزیدند پس خداوند ایشان را به عذاب دردناک مجازات می‌کند و جد خدا برای و میومددگاری نمیامند ای مردم و تحقیق با شما حجتی از جانب پروردگار شما آمده است و سوی شما روشنایی آشکار را فرستادی. پس آنانی که به خداوند ایمان آوردن و به کتاب او چنگ زدن، به خداوند ایشان را مشمول مرحمتی از جانب خویش و مهربانی می سازد و ایشان را به سوی خود برای راست هدایت می کند. از تو تو میخواهند خواهند بگوی خداوند با شما درباره کلاله چنین حکم می کند اگر مردی بمیرد و از خود فرزند باکی نگذارد و صرف از او خواهر بماند برای او نیمه میراث است و او یعنی برادر از خواهر خیش اس میبرد اگر از آن یعنی خواهر فرزندی نمانده باشد اگر دو خواهر باشند ایشان دو سوسی میراث را مشترک می گیرن. اگر برادران و خواهرانی باشند مرد دو برابر برسه زن را میگیرد و به دین ترتیب خداوند به شما احکام میراس را روشن میسازد تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیزها داناست.